أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا امنا بالله صدق الله العلي العظيم سبحان الله پروردگار رحمان الرحیم را که ما را بار دیگر پیرامون ماعزه الهی که قرآن مجید باشه مجتمع کرد در حدود 25 سال که این مجلس با رعایت اهل بیت و عنایات آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه برپاست و این یک نعمت بزرگیست و از خداوند سبحان و تعالی می خواییم ادامه این نعمت و فیزی از این مجالس به ارواح کسانی که سالهای گذشته همراه ما بودن و امسال اسیر خاکستان برس به اضافه به کسانی که به نحوی خدمت کردن در این راه و به نحوی منتظر ثواب ما هستند در این لیالی متبرکه پدران مادران اقوام خیشواندان چه حالا در قید حیات باشند و یا از دنیا رفته باشند به اونا هم رسیده باشه دعا کنیم که ما را همیشه در آینده حالا در قید حیات باشیم و نباشیم از فیض این مجالس محموم نکن بحث امثال مار پیرامون سوره کهف من سه موضوع به عنوان مقدمه عرض می کنم قبل زنی که وارد این بحث مهم بشیم موضوع اول چگونه ما با این جور مجالس و جلسات و بحث ها برخورد داشته باشیم آقایون ساعت هایی که من از شما گیرم و شما رو اسیر عرایز خودم قرار میدم روز قیامت مسئول هستم تا میگه چند ساعت شما از این آقایون تصاحب کردید چه گفتید؟ وقفوهم انهم مسئولون و لنسألن للذین ارسل إليهم و المرسلين المرسلین ما از مردم سؤال میکنیم که چه کردید با پیغمبران از خود پیغمبران هم سؤال میکنیم چه کردید این ساعتهایی که شما هم صرف میکنید شما مسئولیت دارید اگر این مجلس و این جلسات بهترین گزینه برای شما نباشه شما برید گزینه بهتر پیدا کنید و اگر بهترین باشه استفادهی بهینه بکنید بند از کل برادران و جوانهای عزیز خصوص و طلاب علوم دینیه که غالبا در خدمتشون هستیم تقاضا دارم که از موبایل استفاده کنن و رو ضبط کنن و بعدش برن بشنون اونایی که به درد میخوره یاد داشت کنن اونایی که به نظرشون میاد به درد دیگران میخوره برای دیگران اسم اس کنن چیوری بفرستن ما, مسئولیت ما در برابر تهاجمهای فرهنگی سهمناک مستمر وحشتناک غیر از همین مجالس و همین امر معروف و نحی از منکرها و همین مسئولیت همگانی که هر کسی که یک علمی را برای خودش گرفت مسئولیت داره به منتقل بکنه که پیغمبر اکرم رسول اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد وال محمد صلی الله عليه وآله آله وسلم فرموده باشند نظر الله عبداً سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها لغيره فربح حامل علم الها من لا علم له وربح حامل علم الها من هو عفهمین خدا روی اون بنده ای که فرمایشات پیغمبر رو بشنود سفید کنه که برای بره برای دیگران بازگو کنه شاید به کسی این فرمایشات نرسیده باشه بره بگه شاید بگه به کسی که برای او شخص سالست فایده بیشتر باشه نظر الله عبدان ما میخواهیم از اینا باشه. این مطلب عبدان مطلب دوم هر سوره از سوره های قرآن یک چارچوبی داره یعنی در یک بحث های مشترکه ولی در یه سری از بحث ها نه مخصوص خود این سوره است اگر ما این چارچوها رو مشخص بکنیم از اول و دنبال اون مسائلی که در هر سورهی به اون توجه خاص شده باشیم فایده بیشتری میتونیم از سوره بگیریم استفاده بیشتری میکنیم حالا غیر از سوره حمد و سوره قل هوالله و سوره هایی که جامع مانع همه مسائل درش ذکر شده اما مثلا سوره بقره یه چارچوب داره آل امران یه چارچوب اسمشم اسمش هم به همون تناسب اون چارچوب اون موضوعات اساسی انتخاب شده که بنده خیال میکنم اسما را هم خداوند سبحان و تعالی آلبن بیان و از راه پیغمبر اکرم به ما رسید. <تصفيق> ولی قرآن کتاب متشابهاته یعنی ضمن این که شما می‌بینید همون حرفاست قصه حرت موسی است و قصه بنی اسرائیل است و قصه معاد است و آخرت و ایمان به خدا و صفات الهیه ضمن این یک بحث های مخصوصی اینجا شده از این جهت خیلی از مفسرین اولی که به یک سوره ای می میرسه میگه این سوره درباره معاد و درباره آخرت و درباره پیغمبر و درباره خداشناسی و خب همه سوره اینه بس فرقش با سوره قبل یا سوره بعد چیه اینو زیاد بحثشو نمی کنم و اینجا یه نکته حساسی است که هم بخوام برای شما بازگو کنم ان الله که مفید باشه و اون این است که عقاید اساس دین ما عقایده اساس دین ما بینشه ما یه بینش داریم یه منش داریم یه روش داریم اساس بینشه جهان بینی ما که هستیم از کجا اومدیم به کجا می‌خوایم بریم کلیات کسی که در جنبه های عمومی زعف داشته باشه در جنبه های خصوصی بدتره یعنی مثل کسی مخواد به شهری راه و اشتباه بره شهر شرقه این از طرف غرب حرکت کنه این به هیچ وجه نمیرسن به جایی گفت ترسم نرسی به مکه اعرابی که این راه که تو میروی به ترکستان است. هیچ این اشسته پاکه ما اگر عقایدمون درست نشه هیچ نداریم و من به شما عرض کنم در تهاجم فرهنگی جدیدی که امروز از طرف کشورهای ملحد و نیروهای دشمن دشمن سوگند خورده های ما که ها دیگه خودتون میدونید تا از طرف اون هایی که امروز ترتیب داده شده امروز، نه است، قبران جور دیگه بود دارن تیشه به ریشه میزننن زیرساختارهای ما را هدف گرفتن، عقاید ما را هدف گرفتن من میدونم در عراق، در عربستان، در مصر، در جهاجگاه من خیلی خبر ایران ندارم گروه های پیداشتن بیران ملحدی اسم خودی مولحد و کتاب‌های نش و بحث رفته سر اون اساسیات و اگر ما در مسائل زیر ساختاری زیر بنایی خودمون که همون عقاید باشه مقدار کم بیاریم یکه بقیه مسئله نیست. به دردی میخوره در فکر نقش ایوان هست. خب نقش ایوان باشه اگر ساختمان از بنو بیخ و ایرانه نقش ایوان, ایوان به چکار میخوره؟ فبت العرش دنباً خوش به قول عرب ها خب قرآن مزید کتاب عقایده ولی این نکته ای که به عنوان مخدمه میخواهم اعرض مخدم کنم عقاید قرآن اینجور نیست که خدا یه بحث در باید خداشناسی بکنه بعدش تموم کشد پیغمب شناسی بعدش ما شناسی نه عقایدی که در قرآن بحث میشه با تمام ابعاد وجودی انسان ارتباط داره یعنی خدا در رح از رحمتش بیان میکنه بعدش از شکر شما سخن میاد، بعدش از نوع این شکر بحث میشه بلاخره این عقایدی که در قرآن بحث بشه عقایدیه که در کل زندگی ما باید تجلی کنه نه عقایدیه که از زندگی دوره و خود عقاید لیسیده و منهای بقیه اوضاعمون بحث بشه از این جهته کسی که به عقاید قرآن به بحث های عقایدی قرآن و جهان بینی قرآن توجه بکنه خودش میتونه بفهمه که چقدر به حقیقت رسید یا نرسید که خدا وقتی که درباره نماز صحبت میکنه ریشه این رو میگه و الذکر الله اکبر ان الصلاه تنهى عن فحش و المنكر الذين هم في صلاتهم خاشعون وایل للمصلين الذين عن صلاتهم یعنی بحث نماز منهای بحث نهی ازمون منکر یا تجنب منکرات یا منهای بحث ذکر خدا منهای بحث خشوع و خضوع بحث نمیشه نمازی در قرآن بحث میشه که با همه این ابعاد ارتباط داره عقاید قرآن اینجوره از اینجه حتی همون تکرار میشه اما شما به اون اصل توجه بکنید بعدا به اون فروع و شعبی که از این اصل شعبه میگیره و اون هم تواجه پیدا بکنید این مطلب تو. مطلب سو اسم این سوره سوره کهفه عرض کردم اسم سوره ها با محتوای سوره ها هم ارتباط داره یعنی سوره بقره اگر بحث داده شما حساب بکنید خیلی دیرم بخوادی وقتی خدا به من توفیق بده و الله یا به آقایون توفیق بده کسان دیگه توفیق بده بحثی درباره اسمهای سور و رابطه این اسمها به زندگی بشر باشه زندگی بشر وابسته است به گاو به بقره همه جای دنیا این محور اقتصاده شیرشه پوستشه الى آخری خب چرا سوره دوم آل امرانه آل امران سوره درباره رهبریته من الله اصطفا آدم و نوحن و عمران و, آل و آل ابراهیم و عمران على العالمين. اینجا به من چه عرض توی شد؟ وحدت و اینو آقا اول وجود بعدن سجود شما خدایی که به شما زندگی داده مثلا بعدش میگه رهبری رهبری همکنانی که زندگی اقتصادی بشر وابسته به یک راهیست که امرار ما انسان بکنه این زندگی بدون رهبری صحیح معنا نداره خب درباره وحدت بحث شده در سوره عمران درباره مخالفت با انصوریت در مسائل زیاد ولی کلا چارچوبش رهبری مریم سوره نساء خب رهبری که تأسیس شد زندگی تام تامینش را چی می‌خواد تشکیل جامعه سوره در دربای تشکیل جامعه میشه که محبرش همین تشکیل خانواده است. بحث هاش تموم میشه میده ماعده ماعده دربای چیه بحثش؟ دربای تمدنه وقتی یه جامعه تشکیل پیدا کرد باید برن سمت تمدن سوره ماعده بحثی میکنه باز میریم سوره انعام و انفال و تا به توبه میرسیم و اینا هر کدومی یک جنبه از جنبه های زندگی ما رو تأمین میکنه ما خیلی قرآن میخونیم اما چقدر تدبر میکنیم چقدر فکر میکنیم که این یعنی که حالت امین سلام الله عليه فرمودن استنتقوه بپرسید از قرآن چه خبره البته نمعز کنم ما به هیچ وجه به هیچ وجه نمیتونیم اعتماد به مغز خودمون و فکر خودمون و منهای بیان اهل بیت و پیغمبر اکرم بشته باشه از اونها باید استفاده کامل بکنیم ولی باید فکرمونم را بندازیم افلایت ی تدبرون القرآن ام علا قلوبن، اقفالها حالا سوره کهف، سه تا بحث در سوره کهف مایده که, که جای دیگه نایمده یکی بحث خود اصحاب که یکی بحث حضرت موسیٰ و اون عالم ربانی یکی بحث ضرقرنج این بحث به هم شیرت داره. داریم دقت بفرمایید، هر زمین جاست. من دلم میخواد حالا چقدر موفق باشم نمیدونم که عرایزم زیاد تکراری نباشه خب هر سال ما عرایزی داریم اونو میخواد که مسائل باشه که براخر وقتی اینا چاپ میشه و بخش میشه نبینند که اینا نسخه دوم صحبت اوله سه تا قصه در سوره کهف آمده که رابطه به اینها رو باید بپرمیم کهف یعنی شکافی که در کوه هست بهش میگیم کهف بشر روزی که خونه نبوده کاشانه نبوده، چیزی نبوده در می در مقاره ها زندگی می کردند. یعنی ها زندگی بی... یه مقدار شکاف و کموزیاد هم زندگی بی کردن. چرا؟ چرا اونجا می دو دلیل داره. دلیل اولش دنبال این بودند که امنیت داشته باشند. دشمنی بوده. هر مردم با هم دیگه با از آدو با هم دشمن بوده. برای امنی حفظ امنیت و قلشون می رفتن. پناه به کوه میگردن دو برای سلامتیشون چون غیر از دشمن خارجی مشکلات گزنده ها و درنده ها و اینا هم بوده برای حفظ سلامتی دو نعمت از آقای اون دقت کنید خیلی اینا مهمه کسی که مخواد سیاست مدار کشور باشه کسی که مخواد فعالیت کنه در یک جامعه این دو تار رو باید نصب نسب و قرار بده یکی امنیتی که سلامت نعمتان مجهولتان الصحة و الامان و من به شما عرض می کنم بند غیر از این که در عراق زندگی می کنم جاهای دیگه دنیا هم گابگای می رم عرض کنم به شما این نعمتی که خدا به شما داده خدا به شما داده البته خدا سبحان و تعالی مسبب الاسباب خیلی های دیگه همش در اینکه این نعمت رو برای شما تهیه کردن شریک بودن نعمت امنیت و نعمت سلامه از ذر پزشکی کشور ما الان در در حول حوش کشورهای پیش رفته دنیا است از دار میتونم به زرس قاطع بگم بهتر از فکرگانه دیگه من اینجوری که تشخیص دادم بلا شاید یکی دیگه اینجور تشخیص داده که بنده در خبرهای جهانی مرتب مطلع هستم چی میگذره. امریکا رفتم، اروپا رفتم، هند رفتم، طرف اقیانسی رفتم، رفتم دیدم دیدم اونجا چقدر امنیتشون شکننده است چارچوب امنیتشون شکننده است من این پار مثلا در سدی بودم سخران کردم جایی و آقای اون مرا گرفتن انداختن تو ماشین این ماشین سریع چی میکنید؟ گفتن آقا مشکله ممکنه کسان الان دنبال تو بیام که ما اینجا پیاده میریم این طرف اون طرف کسی, کسی نیست این دوتا نعمد بشر برای اینکه به این دونه عمد دست بیابه رفت توی کوه، کوه یه کف داریم یه شعب داریم شاید مکیه مشرف شدید شدید شعب ابی طالب، شعبه عامر، شعب جن، شعبه چنا شعب, شعب شکاف بزرگ در کوه شعب اگر شکاف تر باشه بهش میگن چی؟ کهف خوب چه بحثیه درباره کف یعنی که بنده و شما و هر بشری تا روز قیامت احتیاج داره یه پناهگاه یعنی کهف نوع پناهگاه عوض میشه. یه روز شکاف کوه و مغاره است یه روز خانه است یه روز تونل زیر زمینه یه روز هر روز یه جوره ولی این پناهگاه ضرورت برای بشر چه از نظر اینکه پناهگاه باشه در برابر دشمن یا در برابر حوادث غیر منتظره سیل زلزله همیشه که است و الی آخری این پناهگاه مو احتیاج خب پناهگاه چند نوعه؟ دقت که میکنیم بیبینیم ما سه نوع پناهگاه داریم قسمت اول پناهگاه ما در برابر دقیانگرانه که باید اونجا ما پناه بگیریم پناه به اول پناه به خدا بعدا پناه یک وسائل مادی هم احتیاج داره اصحاب کف از این شروع شد که یه عده ای اینها دورور دقیانوس بودن و امپراتوری بود و بزرگتری روم تاریخ بوده اینا شنیدن که یک پیغمبری آمده اون حضرت عیساس مؤمن شدن ولی دن نمیتونن مقاومت کنن با اون داغیه زمانشون اینا با همدیگه پیش پیش کردن و همدیگه رو یافتن و ودن بینون رفتن در کهف زندگی کردن که حالا قصه شما افرسن انشاءالله بازگو میکن در خدمت اول تناهی به خدا آوردن خدا در قرآن چیز میفنند؟ فمن استمسک بل فمن یکفر بطاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بل عروت وثقه اینا هم گفتن ربنا حی من امرنا رشدا خدا تو پناه ما هست ولی پناه بردن به خدا به این مفهوم نیست که هیچکار نکنه باید هجرت بکنه باید یک کهفی پیدا بکنه یک پیدا اونجا بره باید تقیه بکنه باید چه چه چه این بحثای ریزیه که انشاءالله در بحثای آینده ما در این قصده بحث میکنم. خب پناهگاه دوم چیه؟ پناهگاه دوم علمه. علمه. موس بن عمران کلیم الله اول العزم یکی از مهمترین پیغمرای ما بوده. درسته؟ خدا گفت موسا برو دنبال یک عالم ربانی بگرد و از او علم استفاده بکن. فقه تفسیر علم فناوری علم علم, علم،, علم پناه است علم قدرت است این در این قصه بحثش انشاءالله میشه قصه ارت موسا و اون عالم ربانی سومی چیه؟ سوامی که پناه یک جامعه هست دولت عادله هست که خداوند در چارچوب قصه ذوالقرنین برای ما بیان می‌فرما. پس ما سه پناهگاه داریم. پناهگاه اول خدا و با شرایطش دوم علم و سوم دولت عادله. دولت عادل. این سه تا پناهگاه. اینا با هم ربط داده شده شده یک سوره بنامه سوره کهف اگر کسی از شما پرسید رابطه بین این سه تا که در این سوره فقط و فقط در این سوره بحث شده چیه؟ میتونید بگید مراجعه کن به کلمه کهف که پناه انسانه خب من اینجا باید یه حاشیم بزنم در ایام ماهي شعبان شميت صلواتي خندق. ويتى الله هم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر واستكين. كم نياريم در محبة أهل بي. كم نياريم در ولاية أهل بي. كم نياريم در ارتباط بأهل بي. خدا بکنه من یه چیز عرض کنم این ماه رمزان نگذره مگر اینکه که ما رابطمون با خدا و پیغمبر و اهل بید مستحکم تر بشیم این هدیه رو از این ماه رمزان با خودون ببریم ارتباطمون وقتی که میگیم یا علی واقعا یا علی گفته باشیم به تکون بخوره یا ابل فضل که میگیم واقعا با ابل فضل رفیق بشیم معنوس بشیم گره های بسیار کور رو این یا علی ها میبره من نمیدونم اصل و فصل این ناد علیان مضر العجائب چیه ولی خودم تجربه کردم جاهایی که دیگه گیر میکنم دیگه هیچ چیزی برام نیست اینو که میخوام یومین میگوشاییشه کسی هست از شما تجربه دیگه داشته باشه؟ کسی هست از شما که وقتی که به مشکل برخورد و متوسط به اهل بیت شد مشکلش حل نشده باشه؟ ممکنه یادمون بره اون روحیهی که در حالت مشکلات ما داریم همیشه نداریم ولی اصلش میدونیم که ما چه وضعی داشتیم و به کجا رسیدیم؟ الكهف الْحَسْنِي إنجاز که خدا هم فرماید حضرت امام رزا صلى الله عليه وسلم إن حدیث قدسيه که شما عماتم میدونید سلسلات الزهب كلمة لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني أمن عذابي باز فرموداً بشرطها وَأَنَا من شُرُوتَهَا که حالا شما در تهران هر خیلی جه های های قدیمی که بریم می‌بینیم نوشته ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن عذاب ولایت علی یعنی نفی بلایت غیره الهی هر نوعی که باشه این ولایت علی همون حسنه همون کهفه کهف اینه اساس کف اینه اساس پناهگاه ما اینه آقا این پناهگاه باید ازا مستحکم کنه این پناهگاه پناهگاه اینیست که فقط در خونه مونه، خونه مونه، بازار، رفتمونه، آمدنمونه، سفرمونه حالا بیشتر عرض کنم این پناهگاه وقتی که تمام اطرافی های ما دیگه معیوس شدن از ما که زشگاه گفتن این دیگه باید بره تموم شده اون لحظه کی دو دنبالمم؟ به کی پناه ببریم؟ البته خدا ولی خدا فرموده وسیله و ابتاقویل وسیله اگر امروز رابطه تو با علی با أهل بيت با فاطمي الزهراب مستحكم أكوني روز در اللحظة كم يرمها؟ إن كهفة الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وبلجأ الهاربين وعثمة المعتصمين این اساسه آدم در 24 ساعته میبینه یه مسائل مختلفی از بدینش میاد خونم چطو تو، زندگیم چطو. باشه اینا خوبه اما یه ساعت دو ساعت هم دیشنید فکر خودمون باشیم فکر آینده خودمون باشیم فکر لحظات حساس زندگیمون باشیم این هدیه ماه ما ماه باشه حالا امشب شب اوله اگر خدا توفیق تا شب آخره من یایتون میارم میگم شب اول عرض کردم امشب تموم میشه ماه رمزان این یکی از ماه هایی که سریع رد میشه ماه یه جوریه طبیعتش این میکنه زود تموم میشه این احساس بشره از در ساعت همون ساعته اما یه جوریه که انسان احساس به زمان نداره داره. پس از اول روز اول که این روز باشه شب دومی که امشب باشه برنامارزی بکنیم که زود از دستمون نره و جوری انجام بدیم که یه حدیهی برای خودمون و برای آیندمون و برای ماهای آینده الله نصیب ما بشه و صل الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین 打高 <I>